بانام و یاد و بزرگ داشته نخست زندگی و جان را و همراه و همزمان خرد را آن خرد بزرگ و نیک و بیزیان آن خرد کاربند و شادساز بزرگ میدارم و ارج میگذرم هر آنچه زندگی و خرد می آفرد. و هر آنچه چه این دو را آفریده و هر آن به همیشه از سر نو می آفریده و پیش می دارد. آنچه که خداوند جان و خردش می دارم اون که خود نیز هر آن نو می شود و پیش می بزرگ میدارم و عج میگذارم یادو نام همه اون انسانهایی رو از هرچه گذشته تا به امروز و خواب آینده که این دو را زندگی و خرد را سو بوده بود هستند و خواهم بود و بالاتر از همه اج می گذارم نام و یاد و پیانه یکی از برتبین هار زرتشت پاک و فرد و زندگی آباد کن و سخنبر وخش ور را همانی که عشوب زرتشتش مینام همانی که به نامش دینی بو آیینی بو فرهنگی پایه گرفت و بالید و قستر که مردم سرزمین بزرگی را آیین زندگانی آود که از میان آنان وسی نامدار دانشمندان سخنوران چکام سرایان فرزانگان موسیقیدانان هنرمندان گوناگون و حتی پیامآوران دادگران و رهبران بزرگی مانند کورش بزرگ و دارویوش گرامی و بسی دیگران رو ساخت و پرورد و حدیه اصلا انجام بزرگ میدارم و عج میگذارم همه دیگر پاکان و راستان و نیک زنان و نیک مردان و عشبنان همه ی از یا عمرتن، یم و یما، یا جم و جمع و جما، مشی و مشیانه این همه این نخستین زنان و مردان گرفته تا همه سی و سودرسانان نیروز و تو درسانان ویروز و پرداها. ها این درود بلند بارا رو گفتم که مانند می این در آغاز کار باشه و ما رو با بخشی از اون ارزش نیک و باورهای سازنده و اون و بکنیم و در پیون بگذاریم نگودی میگم به همه شما نازنینان همکیشان هماندیشان هم همزبانان هم هم و همراهانی که به این سخنان و از راه این دوبین و این و این وبینار به خودش دستیافت دارش و خرد هست با هم هستیم و درودی گرم و نرم و سبز البته اشتبالشه سبزی راهی رو سبزی سرگونه سبزی توشنی بخش و آگاهی آورد آوها در فرنگی از این پس هم یادمون باشه هرگاه من میگویم فرهنگ ایرانی آرش سخن یا منظورم در واقع من فرهنگ زندگی ساز و خرد پرور و شاد و روشنایی بخش و زندگی ساز و گگان ساز و آرامش بعد دیگرانی هم که آمدند، خوش آمدید، خوش آمدید، پیستان. آره، سخن از یک فرهنگ هست به طور پلی. سخن از یک دین آین هست که میشه از اون با نام گوناگون یاد کرد. از نامهایی که در اونها واژگان دین یا آین هست مالند تین و آین زرتشتی تین و آین بهی راست دینی راست کیشی بهدینی تا دونه های دیگر از اون رو که میتونیم بگیم مانند راست باوری بهدینی بینش نیک نیک باوری نیک سازی و و و تانچه که گاهی فرهنگ ایران یا ایران شهر هم نگو میرم دوستان پیش از اینکه ادامه بدن نخست اینکه با هم درودی میگن به همه پس که بودی به تازه اومدی چون به آرام آرام دوستان تشریف میارن و اینکه بد نیست که از این پس وقتی که با هم میشینیم چند تا چیز رو برها حال لازمه برای این گوله نشست ها خودم باید رعایت کنم. میکید که از اونجا که توجه مون به با هم باشه تخواسته که اون چیزهایی که دوروبرمون میتونه که میحواستمون رو کنه، ماند تلفونمون و چیزهای دیگر رو ببندیم و باهم باشیم. اگر نوشیدنی چیزی میخوای، ماند من که اینجا با شفاف و ذرای در هست. باشه که گاهی وقتا لبی تازه کنم و باهم باشه. و بتونیم بهره کافی ببریم، قدم و کاغذ باشی در کنارتون، هرچند چند در بارهای آینده که به چک کلاس های متشکل باشه، از افثارهای دیگر هم بهره خواهند گرفت کابل پوینت و نوشتارهای دیگر، ولی داشته باشین که از لازم داشتید، یا داشته باش. هر روی گفتیم از بهدینی میخوایم بزنیم و از فرهنگ ایران داریم. البته یک نام یا یک برنامه بسیار کوهن و ریشهی و پر دیگر هم هست که خود من رو دوست دارم و گاهوگاه از اون بخه می به آن مزده اصلی. البته این, این برنام هم مانند باجنهای دین و خداو و پیانبر و مانند اونها بارهای مثبت و منفی گوناگونی به خودشون گرفتن که منم خواهم کوشید تا در این گفتگوها که در پیش دو هستن اینها رو هستند اینها رو باز کنم و راستیها رو تا اندازه دانشم و دانشهای موجود نشان خوزینش هم همیشه با چنرولده و جوری هم البته تنها این برنامه ها و واجه ها نیستن بلکه اصلا خیلی دیگر که چگونگی برداشت هر کس از چیم و مانا و مینش اونها چیم دوستان بیدارید یعنی همان معنی من گاه چیم میگویم، گاه مانا می‌گویم، مینش به مفهوم گفته میشه من کاری وقت مفهوم رو به کار می‌برم، وقتا مینش رو به کار می برم. این به خاطر این زبان گفتگوز که میدونیم که بعد هیجگی‌های خودش داره زبان کنونی فارسی ما و در این مورد بیشتر افتی این گفته باشم نازای اینا که من خودم رو شناس به مفهوم دانشگاه رفته اون در اون زشته نمیدونم. ما نیستم، اما در بخش هایی بر ها کمی آزایی یافته باشم که اونها رو با شما در نون میذارم و صد البته که بسیارم کم دارم که با هم پاهینا بودم، که این به هر گونهی هم, هم هست. هم پرسی، نه همه پرسی ها باشه هم پرسی همانا با هم آمو بودن. با هم جسته کردن و با هم در پیه داستی ها بودن و این با هم بودن از که ازش که سازنده از یگانه یک خب، دارن اکنون پیش از این که به بازگشایی و گفته بیشتر برسیم که گفتگوی زیادی رو خواهن. از هفته امروز همو گفتم من تا یک ساعت از هر برنامه که تلاش میکنم در همون مرزها بمونم اگه نیاضی شد بیشتر ولی تلاش میکنیم که هنجار سامان رو کنیم. کر نخست باعث است که به سراندیشه ها و چگونگی کار روش کار و چگونگی آموزش و روش اون بپردازم آگاهی بیشتره. بیشتر این کار باید تا اونجا که میشه اساسی باشه نکته ای رو بگم این هم بگم که هر وقت من میگم نکته ای رو بگم یعنی که الان جاشه که در شاید در پیوند با اون یه جستال یا یه واجه یا مفهوم به کار رفته کمی روشنگری بشه و گزارشی داده بشه تا همونجا اون چیمو مینشش جا بیفته و ناگفته نگذاره. به دو دوستان تازه ها. پس، نکته چیست در اینجا؟ واژه‌ی رو به کار بردم، واژه اساسی. اساس. خیلی جالب از اون است که مانند، خیلی از واژه اساسی است. اصلاً خودش اساس هست. در, در فرهنگ کهان ایران ما در زبان کهن ایرانی واژه دارید اه میاد اه اح یا او که از اهوراز اونجا میاد اه همون از انگلیسی یا ایز داره اه as اینا هم بعضی جا میاد معنای بودن معنای هستن از یا آس هم که گفته میشه که در آسمان هم داریم و اون آس کارت بازی هم مثلا اینجاست به به چم ریشه و بون و اصل است حالا وقتی که دو تا اساس اص, از اص, اس و هم می میشه گفتش که بن بل ها، ریشه میشه ها مینوان مینون، دانه دانه ها، گوهر قو ها یا سرشت سر، سرشت ها اون بونو میریشه. گوبان یک آگاهی و یک توفی که نیست، جدی، واجه است در انگلیسی هم که داریم به معنای ته، باز هم از اینجا میاد. درست به ما، مانند واجه end در انگلیسی که end باز هم ته است برای تارسی ما، البته and، مانند اند انگلیسی هم که بست میکنه پیونده به جای خود اندی که در اندیشه داریم، این اند یا اند، همون باز دانه و قخم و گوهر و اون و رو سوشت خب، این نقطه طول شد ولی نیاز بود بدید دوستان، هدف این نیست که من اینجا چیزهایی رو تن, تن بگم هران بشنوید و سپس هم فراموش تراموش البته یکی از انگیزه های من برای گزینش این روش یعنی، سیمایی و آبایی، برای بیشتر کردن و بالاتر بردن اون حنایش یا تاثیر و کارامد یا جاندمان کارست رو میبارم کارامد باشم. خب، همان گونه که در بیانیه پیشدرآمد این ها گفتم یا نوشتم و برای که بش های گوناگون رو که نیازهای گوناگون رو در موقع پوشش داد و پاسخ داد این من چند بخش کردم این نوشته ها رو که یک سامانی هم براشن داشته باش بهطور فیشوار بگم دین آین، فرهنگ و روش و افزار های بکارگیری این سه یعنی این آین و فرهنگ در زندگی روزمره و برای پیشرفت و تکامل بخشیدن به پیش که البته بسیاری مغولات و دستانها رو دربار دید. از دین بگم که آنچه که دین نامیده میشه برای من همان بنیان و خلصفه است. هست. همانی که خود توش اون رو دعینا یا دید درون یا دینش نامیده. که امروزه به بجدان هم برگردان میشه یا زند میشه. تفسیر میشه. بینش هم همانا چیز همان دانش درونی شده یا از درون آمده که به زبان دیگر به بخش فراآگاه ما پیوند داره. در مورد این بخش آگاهی که بخشش میکنیم. یا میکنیم گاهی کسانی که در این مورها گفتگو میشه بخش آگاه ما به همون کانشنس نلیس بخش ناخود میتونیم بگیم یا یا کانشنس. و یه بخشی هم داریم فرا آگاه یا فراآگاهی سوپر اش که اینها با کیستی ما و چیستی هستی همه اینا کار داره که به همه اینا در آینده خواهید داردن. خب، از اون روشی که من در پیش خواهم گرفت از این پس تا دارم میگم که در مورد چیا میخوایم صحبت کنیم. پس یک نیم خب؟ و بعد گفتم آیین حالا چرا اینا اصلا جدا میکنم آنچه که می مینامم از دید من بیشتر به مفهوم چگونگی انجام یه نقصد رو بخشید آره هم میکنون دارن نشارس یوتیوب برای هم میکنون باز بکنید اجازه بدید در این مورد وقتی که داریم این میرسیم بیشتر توضیح میدنید که چرا و چرا. آره گفتم آین رو من بیشتر به مفهوم چگونگی انجام و اجرای بلخی ترادات ها یا هم رسط برای نمونه ما میدیم آیین پیوند زن آشون یا آیین برگذاری جشد،, جشد نوری جشد ها خب اینها را من آیین میدونم البته اگه بخوایم وارد باز ها بشیم آیین، آدین، آزین به خیلی چیزها برمیگرده پس داره که یکی اون کسانی که نخص به این واژگان رسیدن چی با اونها؟ بگن را و بعد دیگران در چه مواردی از اون استفاده کردن. خب امروز هم ما می‌بینیم که از اونجا که واژه دین و آن به اصطلاف کلش فهمی‌ها و کج و کارهایی که به نام دین انجام میشه، این واجه‌ها رو بدنامکار کرد. خب کنی دوست دارن این واجه‌ها را نبرن و به جایش بکار که اون هم می‌فهمم های درش هست ولی من همیشه گفتم که باید هر چی دو سر جای درست خودش می شاید هزینه هایی هم باید فرداخت بشه ولی هیچکال نداره اگر اگر باوری داریم به اینکه چیزی درسته است و درست بهش هم رفتار بکنیم، همه این انتحال جای خودشون آروماره درست را خواهنده. واجه ها ابزار ما هستند. برای اینکه ای بتونیم با هم پیوند برقنیم. و بتونیم که اندیشهمون رو به همدیگر برس و باید بتونیم با چشم خیره به همه اینها و همه چیز ده ده. در درونی روی هیچ چیزی یا تعصب بی خود نداشته بشن بلکه هدف فهمیدن اون که در زیر ماجمه هست کار واژگان اشاره کردن و نشون دادن اون چیزهاییست که میخوان بهش اشاره اون موقع. های گفتگوهای اساسی میانه، ما بیرانی ها حالا بخوام بگیم به ترکده هست که هم از دینی، هم فلسفی هم دانشی، هم منطقی، وقت زمان و فضای درست نداشتیم که در آرامش و در یک فضای خلدورزانه، همگان به همسخنی و همپرسی در مغورات بفرازند و با داد و ستت عدیشه ها گفتم به دور از پیبرزی ها به روشن کردن و به بونهی ثبت کردن و ثابت کردن برخی ویمنی ها یا تعریف های اساسی بکنند از این روز گاهی نیاس است تا برخی واجه ها و فراز ها رو بیشترشون انگشت انگوشت و در نورش کفته شد تا هم آرش سخن، منظور سخن دریافت بشه به هم آرگماروم این واجه جا بود. توشواری دیگر کار هم میشه گفت که در زبان به کار شده از زبانی که اون رو فارسی یا فارسی مینام و و بودن بسیاری واژگان ناپارسی یا الیرانی در آن که هم خوب و عادت شده. بونه‌ای که خیلی وقتا شاید به کار نبردنشون می‌تونه دشوار بکنه. باز سوی دیگه، بر روی می‌دانیم این راستی رو که فرهنگ با زبان گوییای اون یک پیوندی راست داره، پیوند مستقیمی و بعد اون رو هم بهش ارج گذاشت و در نظر داشت. و هر روی این هم از دوشواری‌های دیگر در بر, بر پیوندی که هم فهمانه باشه بشم فهمید. من در اندازه توان خودم میخوشم تا بیشتر از واجبان پارسی بره ببرم. اما بیگم آن بسیاری جهام از وان واجبها هم یاریدنم. خب این هم از پرسش زبان گرسه بود. اکن از دین و آین گفتم فرهنگ رو هم نام بردم. که البته فرهنگ همه اینها هست دو اینها رو در بردم میشه گفتش که به روی همه اندیشه و گفتار و کردار مردمی و رفتارها و روش زیست مردم گفت میشه. که بنیانش هم همون باورها و جهانبینی است. که باز هم میشه گفت دین آین اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که سخن از از جهانگینی و باورهای زیربنایی اما چرا من بخش فرهنگ رو کمی از دین آین کردم از این روز که نمیخوام به دلایل گوناگون شوندهای گوناگون تنها خودم رو به چارچوب مزدیستان مرزی کنم یا محدود کنم زیرا هدف از همه این اینها شناخت درست همه بنمایه‌های خوب فرهنگ ش... شهری است و گزینش بهترین‌ها از میان اونها برای چی برای بازسازی و نوسازی فرهنگ و بهسازی زندگی تکی و گروهی انا بندگی های فردی و اجتماعی و از اونجای که میدونیم این بنمایه ها طبیعی و سرشتی و انسانی هستن بنابراین جهانی هم هستن و میشه در هر جایی از این جهان و در میان هر مردمی هم که زندگی میکنیم هم اونها رو برای خود کار رو بندیم و هم به دیگران نشان بدیم تا خودشون داستی ها رو ببینند و بخش دیگری که اون رو روش ها و ابزارهای به کارگیری این سه در زندگی روزمده و برای پیشرفت و تکامل کا بخشن به پیشمادم در بردارنده مغول زیادی است که با یاری دانش کوهن تا دانش نوری به باز نمیدن و آموزش راه و روش های خودشناسی تا دیدیتشناسی و جهانشناسی ویژه می خواهد کشوند. نخستین و مهندترین یا مهمترین این جستارها همون جهان جهانبینی و باور است که پایای همه این گفتگوها و بودن و کیستی ماست باور چیست ماهیت اون چیست باورها چگونه در زندگیمون پلید میان و اون رو شکل باور باورهای نادیدنی یا بهقولی کدوم ها هستند چه هستند چگونه میشه اونها را شناخ این ارا بابرها باورهایی هستند که ما نمیدانیم درمون وجود دارند ولی رفتارهای ما تأثیر منفی بیشتر میکرند در مورد اینا گفتگو هم کرد چگونه میتوان اونا شناخت چگونه میتوان انا دگرگون کرد باورها را چگونه میشه دگرگون کرد میشه چقدر هم که در ژرفا رفته باشه و تا بل نشسته باشه ولی راه دارند باورهای دینی تنها گونه ای از باورها هستند که البته بنیادین هستند ولی بسیاری باورهای دیگه هستند که اگرچه باز هم از سرچشمه های بنیادین در واقع میان اما به شکل یا دیسه، دیسه یا شکل رفتارهای روزمره و خود به خودی اتوماتیک خودشون نشون میدن. که گاه اینها شوند آزار درد سر خودمون و دیگره همشوند. ساختار باورها رو بیشتر میشنسیم و میاموزیم که چگونه روی خودمون کار کنیم و به نگیمونو بهتر کنیم دانشی هست به نام باز مجبورم بعضی وقتا از واژگان دیگر زبانها دیگر استفاده کنم هره شاید وقتی بیشتر بهش نسن اش میگن Transactional Analyzes یا کاوش یا کندکاف ترانس اکشنال ترانس به کنش و واکنش مردم یا رفتار های متعابل میگن در فارسی واژه تراکنش رو داریم که به همون کنش و واکنش هست پس ترانس رو به فارسی من میگم کاوش در تراکنش این دانش یکی از ابزارهای نیرومند است برای خودشناسی و مردم که باز هم درباره چرایی کنش ها و رفتارهای ماست و در اونها و انگیزه و شوند اونها کاوش میکنم شاید شهیدی این که میگن کودک درون یا پدر مادر درون یا بالق که اینها بازگو کننده این مدل ها در مورد این دانش شخصی ها خیلی به اون در مد ها گو داشت پنجار و قانونمندی هستی که اشا می چیست؟ و چگونه اون رو در جزیاتش در ریزه کاری‌هاش میتونیم ببینیم در یابییم و در زندگی به درستی به کار آرامش یکی از محنترین و زیر برای ترین که همه چیز پیرامون اون می چند. رام اون پیوند پیدا میکنم. آرامش چیست؟ تراز و هارمونی و بالانس چه پدیده‌هایی هستند، چه گونه به دست می‌دن، راه‌های دستیابی بهشون چی هست؟ چیز داریم به نام یازده بنیان و قانونمندی زندگی اه... که می‌تونه بسیار آموزنده باشه. و زندگی ساز. های مانند قانون فراوانی قانون کشش و توجه قانون رشد و گسترش قانون دریافت قانون کامیابی و دیگر بنیانهای زندگانی که این هم دانشی است که جالب است و در مورد انها گفتگو خواهد شد Uh, یادمون باشد یکی از های زندگی فراش و بهنینی فرشو کرس فرش و کرتی فرش و فرش تازه کرتی کردن فرش و کرتی تازه کردن تازه گردانی که همانا نو شدن و جوان ماندن همیشه ایست این تازه گردانی میتونه در چهار گستره، چهار میدان، چهار زمینه زندگی انجام میشه آه، یکی تنی یا فیزیکی، جسمانی، گیتری، تانبایی که براشه است یکی مینوی یا معنوی یا روانی، پس تن و روان یکی مسئله اندیشه است، منتالی، اندیشهای و پس گروهی زندگی نیگه حازمانی و زندگیش کنند. که بهبودی یا بهباشی در همه این گستره ها رو بهش میگن بهبودی کامل. یعنی اگر تنمون سالم هست تن درست هست روانمونم هم باید درست باشه. اندیشمون درست باشه. روابط اجتماعیمون هم درست باشه. که روی همه اینا رو بهش میگن بهباشی یا بهبودی درسته و کامل به زبان انگلیسی بهش میگیم wellness یا whole health این هم بخش دیگه‌نی برای آموزش که خودش بزرگ است و درون اون تمامی فاکتورها یا سازه هایی رو که در روی تن روان ما و درستیش تنایش داره تاثیر داره بعد اسی میشه. ما بدونیم این خیلی مهمه که تنها با ورزش کردن و درست خوردن نیست که تن درستی کامل رو میتونیم از اون بهمون که اگرچه این خیلی بسیار مهم هستند. اما همونجوری گفتم تن درستی به مفهوم فیزیکی اون خودش هم پیامد و برآمد بهبودی در بخش‌های دیگر است گفتم از روان درسته گرفته تا بهباشی پیوند‌های انسانی آزمانی پیوند‌های مهرامیز بین دو انسان و حتی زیست یا محیط زیست کار و درآمد و همه چی همه اینها باید باشه در کنار هم تا خب اینا همه چیزهایی که به بهتون میگم که چیزاییه که در نظر دارم بعدها که اینها همه در ها خواهد بود زمان میبره ولی در صورت زمان رو داریم از حاضرش یکی دیگه از لغزشای شناخت جرفته و کار بر نیروی اندیشه و همچنین همدارو انگاشت و خاست و درخواست اندیشه، پندار، انگاشت، خاست و درخواست گفتم برخی واجه هست که خاطر اینکه شاید هنوز میگم تعریفاش جانه افتاده خب اینا رو من به چند زبان میگم که فعلا بدانیم منظور چیست و بعد اون رو بیشتر دوش کار کنیم خب نیروی اندیشه ما میگیم همون thinking یا فکر هم با وقتی میگیم من برای خودم، حتی فکر به صلاح تازی است در ورور اندیشه فارسی اما در مفهوب های گناگون بکار دیم، هر روی، اندیشه برای من چیزی است که از, ارا، از اراده خود رو آن فکران است که یک انرژی منتی است که به خود و بیچهت میچرخه در ذبن اندیشه ایمجینیشن، ما خیال، تصور، تنگار ما بشه می‌دونم، می‌دونم ویژوالیزیشن دیدن، در پیش چشم دیدن، تجسم کردن، انگاشتن حتی انگاشت رو میشه به فرضیه و اینها هم گفت، میگم می‌دونم بیشترش کار نیروی خواست، اون, اون دیزایر، اون خواست، به معروف نیرونبن که درانون کسی هست که میتونه به پیشش ببره و باورهاشو رو بساجره پیش به نیروی اراده پاور نیروی خاص. و همچنین خواب رویا و چگونگی کمک گرفتن هم هم فهمیدن خواب و هم کمک گرفتن از نیروی خودخواسته خواب بیدن اینها هم از جمله یک متودی هست به نام بنیانگذارش، به نام خوز سیلوا هست. نمیدونم، بهشون در گذشتران چند نیست. ولی یه شیوهش یا متودش به نام سیلوا نامبر هست. نامبر هست که کلاس هایی داره برای آموزش این سیستم هم میتونم دیجه گیر خب، خناخت نیروهای درونی انسان، از, از،, از, از اون که چرخه های نیرو یا به زبان فرسپیریت همون چاکرها. از این چندها گرفته تا بخشبندی کوهن چهار مدل نیرو. که هماهنگ و سازگار با چهار آخشیج یعنی آب و باد و آتش و آتی زمین از طریق من نگاه میکردم در محبت این گونه است شون با مناس این این انرژیش و یه سری ویژدیهای رفتاری در این 4 مورد که شناخت اونها به به میگه گروهی و اجتماعی من و پیوندهای مهرانمیر به کمک میکنه تا انسانها تا سبک امنخته بهتر درستری ازن پیدا بکنن و درست در با هم رفتار بکنن اینا دوستان اینا که میگم برای من همه اینا در چارچوب نیک، بینی و نیک، که میخوام زندگی کنیم باشیم. خب اینها البته خیلی معقولات دیگر هم هستن شازیوی و چگونه بتونیم تمرین شادزی بکنیم. میشه. آه. آن هم برحال دارش خودش رو داره. اون اونا خواهی اما به کوتاهی بگم دوستان که وارد چه مقولاتی نخواهد؟ یکی مقوله تاریخ است. چند شغل؟ هست. که پرداختن به تاریخ زمان زیادی کن. که خب برای من با این همه چیزهایی که میخوام واردش بشم خب شدنی نیست. دو که من کارشناس تاریخ نیستم. بنابراین بهش نمیخوام به سه اون که به تاریخ نوشته شده که در بیشتر اونها کجنمایی یا به گونه تحریف قول معروف شده داستش باور زیادی ندارم. زیرا اگر درست و آدم رو به کشفنی میکشادن و بعد اون که بسیاری از ما هنوز درون خودمون دست و پاابند های روانی زیادی داریم و نمیتونیم تاریخ رو در زمان و فضای خودش نگاه کنیم و شاید به همین شوند نتونیم درس درستی ازش بگیریم. بنابراین به تمام شونهایی که گفتم و بیشترش به خاطر اینکه که فراهم هم نیست و زمان هم نیست اونجا گام نمییم و شاید بتونم بگم مقوله آنچه ادبیات میدون ادبیها ادبیات فرهنگی مون که از تمام تکام سرایان و دیگر ادبیهای فرهنگمون که باید خسرو بشم، اعتراف کنم که در اونها کارشناسی ندارم و دانش بسنده ندارم اون رو هم به خاطر وامیگذارم که من هم از اونها یادیم. البته در جایی که سخن از شاهنامه ها شاهنامه است دوست دارم که گاه یادی بکنم و دویجه در گفتارهای فرهنگی از اون و اسطوره ها و محکومشون به جماع سخنها. اکنون پس از همه اینها که گفتم شاید که از خودش بپرسه که اصلا من کیستم و چرا چلیم و چه رو دنبال میکن خب پرسش این منطقی کرد که اصلا هفت داره بپرسه و من هم تلاش دیگر میکنم که پاسخ راست و درستی کنیم از که زندگی من و کار هم، که شخصی و چه گروهی و اجتماعی، همینشه تا جای شدنی روشن و رو اونا که من رو میشناسند، میشناسند. که از نزدیک منو نمیشناسند، پوشیدهم که از راه رسانه هایی که در دست دارم، مانند تانما، مانند فیسبوک و رفتزار ها که بتونم از راه نوشتهام، از گفتارم کنم شننااسری بودم اون حال که گفتارهایی منو در ندی و ضخش بیادی چهساافی دنبال کردن شنیددن که هنوز هم در یوتیوب هستن که با نام خودم اگه توش وجود کنندن میاد به نام سخننا در فال تاک سخرانانی های زیادی گفتم که در حال اونها هم بیشتر شیوه نگاه، تا دریافت و انتیشاه های منده بشون باهنم با که آشنایی پیدا کنن اگر هم نه که هم با این سری گفتارها و بحثایی که داشت آشنایی پیدا کنید تا حالا اینجا به کودهای برای کسایی که نمیدانند بگویم که من در خانواده ای در میهانم ایراتچر کشتهام بودم کودکی و جوانیم تا به که بیاد دارم در میان مهربانی ها و اشیه ها و دوستی های نید خوزشت درام امسان فرهنگی بود و همواره در کار آموختن و آموزش خدر بزرگ هم که الگوی من در زندگی بود چه خداگاه و چه ناخداگاه کرد البته که بر اون آگاه شدم میدانید موبدی بود همواره در پی پژوهش و ایشون هم آموزش و آموزش. آمودش و همچنین بانوانی که پیرو اون بودن از بادرگزار که دل بندم تا دوانشون شاد اونایی که رفتن تا مادرم که باشد و صد ویست ساله و بیشتر باشد همیشه شاد و میرومند و میده و نیروبخش برای زندگیم بوده و همه کسانی که یاد نمیکنم خانواده خودم اکنون اونها آم... آنچنان بنیان نیکی در زندگیم گذاشتن که از همه اونا همواره به نیکی یاد میکنم اگر نگویم به مانند فرشتگان بمانند <تصفح> ایزگان یادم دادند که راست بکودند به کسی آزاد نرسدم و اگر هم نادانسته چنین کردم و زمانی اون را دانستم رو در یافتم. و دریافتم پشیمان شم و راست و درست کردم یاد گرفتم که در این جوانی و شوریدگی مرزهای خودم رو در زندگی بشنام و تا اونجا که میتونم اون تراز رو نگه دارم و برای تندرستی و رواندرستی خودم شده رو از اون مرزها بیرونی مرم کتا یاد گرفتم که یاد از این دوران گذشتم و گذشتیم شویدگی های میهن و فرک ناردی رو در دوره دوم زندگیم پس از خور گرفتن با میهن تازهم یاد گرفتم که باز هم بیشتر و باز هم چگونه یاد بگیرم نمیشونه در این سرزمین که مردمش تونستن با خودآموزی و دیگر آموزی بدنگی رو برای خودشون بهتر کنند و در جهان امروز باید بگم هنوز هم ارگو سرمشقی هستند. با کاستی هایی که حال دارند اما آزادن و آزادمنشی خوشبختانه گسترده هست در یک زردند. نیست ولی گسترده است. اینها هم به من آمود و کارهای اجنوبنی و دیگری که در کزشته که این به امروز و موزم خودانده بکنه همچنان در هم. کار آب میدانم که دشواری کار می‌هنم همچنین جهان در کجاست؟ بس کم از دید خودم که هرچه هم می‌گن می در یافته‌ها و دانسته‌های من هست. و شما ممکن است در موارد این دیگری ای داشته باشه. که اون هم نیکوست. میدونم که فرهنگ که گفتم روی همی از اندیش و گفتار و کردار ماست اونها هم برآمد و پیامد باورها و جا بینی هستند مییروننا همیشه است. پس کار فرنگ اگر میخوایم کار اساسی رو نرم افزار تا با راست و درست کردنی اون بخش های دیگر هم خود به خود راست و درست بشن. می میدونم که تازه شدن و تازه گردانی باید همیشه گیران و است همیشه گیرانی است و باید به سوی رسایی و تکامل امروز هم در جایی هستم که میخوام گفتم هرچه بیشتر و در این سال با دیگران در این و به این هم باور راسق دارد که هر کس میتواند و بایسته و شایسته است که پکتری سوحانان را بشنود درانها نید به پس خود آنچه را راست و درست میشن و میابد برگویدن. آه دیگری هم نیست. نمیگم که سخنانم هم بهترین بهتر سخن ها ولی میدونم که ارزش شیدن دارن. پس با دا من باشید. پس این نمیشه. دوستان، همین همینا رو گفتم. ولی نقطه دیگری هم باید گفته بشن. که اون هم برای من جزوی از اساس کار است که من با نگرش به همه رویه های کار و جمعه های گناه در آن شدم تا این آموزش ها رو تنها در دسترس کسانی بگذارم که من رو و این کوشش ها رو یاری بسیدم تا خودشون هم یاری بشم برای آنکه این تلاش بتونه سامان, سامان درست دیگه پیگیری بشه در مانند بسیاری از کارهای دیگر من یا ما نیمه تمام و نیمه کاره بر زمین مزینه باید که تواناییهای شایسته و باعثه برای انجام این کار فرحادید در جهان امروز همه میدونیم هر کاری دوستان هزینه حال چه این هزینه رو دیتوی بدی چه مینایی چه مالی چه انگیشه دی. چه بیرونی و چه درونی. راستش من که تاکنون نتونستم با نیروی و یا با مهر و خواهش و از این دست برنامه سازان این اینترنتی، این سیستم ها، این دستگاه این آموزش ها کنم تا این تو راهگان در اختیار من بزرم تا من هم در اختیار بگذارم نیست آه این رو هم بدانید که من همه این کار رو به هر آنچه خود دارم تا ابتر ندارم میخواهم به سامان و دستکم به آغازی برسیم هیچ کسی و سرمایه‌ای هم نه در این کار بوده و نه من میخواهم که باشم بهجز خود کسانی که خواهان هستم خود کسانی که میخوان در پی آموخت و راستیها باشمد بهتر خود اون کسان سامان تا نه من و نه اونها بادار کسی باش از این بود، کار به گونه ای خواهد بود که برای شرکت در هر نشست در به بیناری یک هزینه بسیار کوچکی در نگر هست تا بتون هزینه های کار پرتخت همطور گفتم نخستین نشست دایگان هست هیه من هست به شما اما پس از این چنین نیست همطور گفتم یک هزینه با که بتونم واقعی براش در نظر هست آه، که آه، این سیستم وبینار بینار که اسمش هست پرداختش از راه پی پل نمیدونم شاید خیلی آشنایی دارید خیلی ساده است. اگر, اگر ندارید اه، اه، پی دات کام برید و اونجا خیلی راحت رایگان هم هست. اونجا یک سال برای خودتون باز میکنید تو چون میتونید هر از رای پیپر با طرف داشته باشید. اگه کسی مشکلی داره با این برای من بنویسه من براش وسیله میکنم. اما چه از اینه در نظر گرفتم من اینها رو به دو بخش میکنم. یک بخشی که نه چارچوب به دین و آین آینه و فرهنگ که برای اونها از این کمپین نظر گرفتم در نظر گرفتم. به شیش یورو، برای هر نشست. اون بخش های دیگر که فرای این ها هست و باید بگویم من خودم اگر نه هزارها ولی صدها اگر بگویم دولار، فحار هزیمه کنم چکال نداره، اوناش مهم نیست مثلا اینکه بتونه بچرخه چرخه هر اونها هرکس بخواد شرکت کنه ده یورو برای هر بار دنزایی. البته خب این نشست ها یک بار در ماه خواهد. یا بیشین دو بار. بستگی داره. بستگی داره به اینکه چگونه بخوایید پیش بدونید. فکر نمی کنم که از اینه زیادی باشه. یا فشار زیادی باشه. کسی باشه. باید حال برای جفتی دیدانش باید پرداخت کرد. اما اگر به راستی کسی از که برای سخت برای شدن میریز، برای بنویسه اشکال نداره. در نگیر خواهد میگه اگر در مورد ساعت یک ساعت هم گذشت ولی این ضیات آخره بودم اگر در مورد زمان نشستگاه شتههای دارید میتونید بگید تا ببینم چه زمانهایی برای بیشتر شما سازگار است البته میدونید که این بسیار دشوار است چون کدام از ما در جایی ب بیشتر شما دوستان که امروس هستید خب بیشتر اروپا هستید و یک شنبه ها رو من برای این نظر گرفتم که مثل پایله هفته است بی بیجه و شب که معمولا همه خونه هستن و بگم زبان خوبی باشه اگر باز هم فکر می‌کنید نیست خب برام بنویسید بگید ولی به بر هر روی که چیز نیست. خود استفاده واسه این هست. گفتن اگه می‌خوای همه رو خوشنود کنی حامله ناخوش ولی برادر اگر پیشنهاداتی داریم برای بهبود کار مهربانید و با ایمیل هم برام بید خب، آه... اکنون تا زمانی که اگر دگرگونی تازه در زمان میشه بخواد ها بده همین رو یک شنبه نظر میگیرم نشست آینده رو دوستان که براتون نامه خواه اوم آنهایی که میخواد باشید نشستی دینی آینی خواهد بود که برای سه هفته دیگه، یعنی یک شنبه روز 26 اکتبر که بیشه آبان روز، آبان ماه با آبانگان هم برابری دارد یک شنبه 26 اکتبر، همین ساعت هفته پسیم به زمان ما به زمان زمان, زمان مرکزی که جایکا هم جا خواهد بود اینکه این نشسته اون موقع با گفته روی بنیادین در مورد باورها و جهانبینی آغاز میشه و سپس به درون جستار این یک دیگاه مجزی هستنی که موارد خود میشه. باز هم یاد کنم که اگر دیدگاهی برای من می و یا پیشنهاد ها دید حتماً خب به مفهوم پذیرش و کنشت شوندن همه ها نیست شدنی نیست ولی این من رو راه نبایی که خواهم کردن سپاس کدارم ازتون و بهترین مطمئن ترین ها برای بودن در این آموزش اینه که خواستن خودتون رو به آقایی من دلش میداد با, با این این ها تا نامتون رو در حسد دوستان. بیشتر خب ناگذیب بودم که این تیزا رو بگم باز میگم این رو من به درده نگاهی دوباره در دسته از ماهام گذاشت یوتیوب و ماهی که شکلت کردیم میتونم برای نمیت رو نجا رازمه خنادم دفرستم باز نگاه خونید خوش چی گفتم و امیدوارم که بتونم با باشم البته بسیاری از شما که با من هستید همین کسایی هستید که آدم و گام در این راه گذاشتید و همیشه البته میتونید بیشتر از هم یاد دید. اما اگر کسایی رو همیش ناسید و که میخوان در آغاز کارند، میخوام بیشتر یاد بگیرند خب، بهشون بگید، آشنایی تا اونها هم بیان کنند خب، برها به راه با هایی از هستم در این زمینه با که مصبت باشدهایی رو بده اگر محفیق نداره میتونه راه می با هم می کنیم و پایان بیدیم به هشه هسته و برای همه تون هفته خوبی رو در پیش رو دارم دوستان شاد باشید آرام باشید با هم مهربان باشید مهربانتون شاد با. در اوند جشن ها اشتایی شک بروغای اشتماستی او اشتا هستی او اشتا احمایی یدشایی و اشتایی اشتا تا درود دیگر از شب خوش خدا روی